سوره الضحى بعد از موضوع توحید و تزهید که در سوره های گذشته بیان شد سوره الضحى و سوره الم در هر دو تسلی است برای رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تسلی برای رسول الله است و هم تسلی برای مؤمنان است اولین سوره که سوره الضحى باشد تسلی بر آن حضرت صلی الله عليه وسلم در مقابل بعضی استعناها که به پیغمبر میزدند، معروف هست میگویند این سوره والضحاء از سورهایی هست که اوائل نازل شد یازدهمین سوره هست و آلم نشرح دوازدهمین سوره هست. مدتی بر آن حضرت صلی الله عليه وسلم وحی نیامد، اما درباره شعن نزول این اختلاف هست. بعضی میگویند که همون که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که من فردا جوابش سوالات شما را می‌دهم مشرکین مکه وقتی که سه سوال مطرح کردند که درباره اصحاب کف درباره قرنین و درباره روح بدون ان الله فرمودند که فردا جواب می‌دهم و فردا دیگه نشد جواب بده و هی نیامد چون ان الله نگفت پانزده روز وحی نیامد مشرکان گفتند که معبود محمد و رب محمد او را ترک کرد او را رها کرد دیگه با او کاری ندارد بعضی میگویند که شأن نزولش همون جریان هست که الله تعالی بعدا این سوره را هم نازل فرمود اون آیه هم هست وَلَا تَقُولًا نَجِدِ شَيْن اِنِّ فاعل ذَلِكَ غَدًا الا اَنْ يَشَاءَ الله و اذكر ربك اذا و بعضی میگنت که آن حضرت صلی الله علیه و سلم مریض شدن گرچه بعضی اون 3 سال فتره الوحی را گفتن ولی اون درست نیست چون در اون 3 سال فتره الوحی آن حضرت صلی الله علیه و سلم ادعا نکرده بود هنوز فقط وحی اول اقرا بسم ربک الذی خلق آمده بود به پیغمبر مسئولیت داده نشده بود که دعوت بده تا اون سه سال رسول الله دعوت نمیداد فقط خودش میرفت و خلوت میکرد راز و نیاز میکرد لذا منظور اون سه سال نمیتونه باشه و کسانی که اون سه سال را گفتند اون از که روایت و اون گفته زیاد قوی نیست بعضی جریان دیگری را گفتن که آن حضرت صلی اللہ علیہ سلام مریض شدن چند شب دو سی شب شدیدن تب بودن همون اوائل بعدن زنی از زنهای قریش و بعضی میگه همون زن ابو لحب بود ام جمیل خیلی با رسول الله عداوت و دشمنی داشت که قرآن فرمود و امرأتو حمالت الحدب فی جیدی ها حبل من مسد همون ام جمیل او گفت خندید گفت که خدای محمد با او قهر کرده و با او قطع رابطه کرده دیگه هیچی برای او نمیفرسته جلوی مردم تمسخر کرد و این جمله را گفت تا این که این سوره نازر شد علا ای حال چی اون جریان باشد چی این جریان باشد یا جریان دیگه باشد از آیات معلوم میشه که مدتی بر آن حضرت وحی نیامد اینکه که واحی نیامد خب بنابر حکمت و بنابر مسئله‌ات گاهی واحی بین دوتا واحی فاصله زیاد می‌شد گاهی و فاصله کم می‌شد لذا او بر اساس یک حکمتی بود. اما مشرکین اون را با دت مسخر گرفتن الله طالع جواب داد. الله می و الظهر والليل اذا سجى قسم بالظهر ظهر وقتی که وقت را میگند همین وقت تقریبا وقت الضحا هست که خورشید اندازه دنیزه و سنیزه بالا میزند خوب دنیا را روشن میکند خوب جهان را روشن میکند و هیچ گوشه تاریک نمیماند روشنی وقتی که کامل بشه واللیل اذا سجا تاریکی وقتی که کامل بشه واللیل اذا سجا شب وقتی که کاملا در بر میگیرد کاملا همه جا را در بر می ما ودعک ربک و ما قلا یعنی شب و روز گواه است و شاهد هست که رب تو تو ترک نکرده و ما قلا بر تو ناراضی نشده الله تعالی بر تو ناراضی و ناخشنود نشده اما بعضی اینجا ترجمه و تشریح زوقی می کنند که هم خالی از لطف نیست میگویند که الله عزوجل اینجا چون تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است سوگند یاد شده به رخسار زیبای رسول الله به درخشنده رسول الله و الضحى اینه که قسم به رخصار زیبای تو و اللیل اذا سجا قسم به زلفهای شبگوونه تو قسم به و موهای سیاه تو چون سیاهی وقتی که با سفیدی باشد زیبا جلوه میده وقتی که چهره انسان زیبا باشد سفید باشد و زلف سیاه داشته باشد موی سیاه داشته باشد. این انسان وقتی که بالاخره ببینیم اون را یک جلوه بسیار زیبایی خواهد بود. لذا گویا خدای تعالی به رخصار آن حضرت صلی اللہ و وسلم و به چهره نورانی و درخشنده آن حضرت و همچنین به زلفهای سیاه و شبگونه آن حضرت سوگند یاد کردند در واقع خدای عزوجل به زلفها و برخصار و به چهره درخشنده و زیبای رسول الله صلی الله عليه وسلم قسم یاد کرده که ما ودعاک ربک وما قلا الله تعالی تو ترک نکرد ما ودعاک ربک وما قلا تو ترک نکرد ربتو تو وما قلا بر تو راضی نشوده بر تو ناخوش نود نشوده وللآخره خیر لك من الاولى انت سليه بیشتری است برای آن حضرت آخرت برای تو بهتر است از دنیا الله تعالی در آخرت به تو اون نعمت میده و اون عنایاتی دارد که اون از دنیا به مراتب بهتر هست ولسوف یعطیک ربک فترضا ان قریب رب تو به تو میدهت بتعطا میکند تو خوشنود میشی تو راضی میشی لذا پروردگار تو را راضی میگرداند الم يجدك يتيما فآوا انجا الله عز وجل هم تسليمیده وهم بیان انعامات سگانہ هست اللہ تعالی بر پیغمبر خودش انعامات زیادی داده من جمله الم يجدك یتیما فآوا آیت را یتیم نیافت شمارا را جائداد جائداد خدای تعالی پدر بزرگ مهربان مثل عبدالمطلب و بعد از اون اموی مهربانی مثل ابو طالب را برای شما تعین کرد و برگزید او تو نگه داری می کرد از تو می کرد و وجدک ضالا فهدا و شما را بی راه دید را, را گم کرده بودی و راه را پیدا نکرده بودی فهدا بی وسیلی وحی نبوت به شریعت الله شما را راه کرد وواجد کا فغنا و شما فقیر یافت نادار یافت چیزی نداشتی اما الله شما را غنی کرد شما را سرمایدار کرد به وسیله نکاح با خدیج کبر بعد از اینکه با خدیجه ازدواج کرد تمام سرمایه خدیجه در اختیار آن حضرت صلی الله عليه وسلم بود لذا۔ این انعامات مادی و معنوی خداوند بر شما داشته پس شما هم سکار بکن یک فَأَمَّا الْيَتِيمَ فلا تقهر این در مقابل علم یجید یتیمن هست اما یتیم را بر یتیم قهر نکن بر یتیم ناراضی نشو وأما و السائل فلا تنهر وَأَمَّا سَائِلَ کسی کی میاید این در مقابل ووجد که هست کسی که سائل هست می مسئله دین از شما میپرسد، پرسد. را از شما جویا می شود فلا تنهر او را سرزنش نکن او را توبیخ نکن و اما بنعمت ربک فحدث اما نسبت بنعمت ربت هموار سخن بگو هم واره مذاکره کن یا داوری کن چونکه الله تعالی بر تو نعمت زیادی انایت فرموده این با وجود که عایلان ف اغنا خدا که توانگری داده خدا که سرمایه داده همیشه یادآور نعمت پروردگار و ذکر کننده نعمت پروردگار باش.